سلتوفون راز بزرگ رفتار با مردم فقط یک راه وجود دارد تا کاری که از کسی می‌خواهید انجام دهد آیا تا کنون در مورد این فکر کرده اید بله فقط یک راه و آن ایجاد علاقه و تمایل برای انجام آن کار است به یاد داشته باشید راه دیگری وجود ندارد البته میتوانید با گذاشتن از لحه روی شقیقه فردی او را مجبور کنید ساعت موچیش را به شما بدهد میتوانید تا وقتی در موزه قدرت هستید با تهدید به اخراج کارمندتان را مجبور به همکاری کنید و نیز میتوانید با کتک یا تقدید کودکی را به انجام کاری وادار کنید اما این روش های زمخت به شدت انعکاز های نمطلوبی دارند تنها راهی که من با آن می توانم شما را به کاری وادارم این است که در مقابل کار انجام شده آنچه را که می خواهید به شما بدهم. حال چه می خواهید؟ از نظر زیگموند فروید هر عملی که از من و شما سر می از دو انگیزه و محرک سرچشمه می گیرد. انگیزه جنسی و میل به بزرگی یا عظمت. جان دیوی یکی از برجسته‌ترین فیلسوفان آمریکا این جمله را با کمی تفاوت بیان کرده است. از نظر او عمیق‌ترین انگیزه در طبیعت انسان، میل به مهم بودن است. این عبارت را به یاد بسپارید، میل به مهم بودن. عبارته بسیار پرمعنی و قابل توجهی است. در این کتاب راجع به آن مطالب زیادی خواهید خواند. حال شما چه میخوایید؟ شاید خواسته زیادی نداشته باشید اما همان خواسته های مختصر تان را نیز با اصرار و با فشاری زیاد و غیر قابل انکاری دنبال میکنید و مشتاقانه در پیر رسیدن به آنها هستید بعضی از خواسته هایی که بیشتر مردم به دنبال آن هستند عبارتند از یک سلامتی و حفظ بقا دو قضا سه خواب و استراحت چهار پول و آنچه که با پول میتوان تهیه کرد پنج سعادت در آخرت شش لذت جنسی هفت سلامتی و شرایط خوب برای فرزندان هشت احساس اهمیت تقریبا همه این خواسته ها در صورت از دست رفتن یا آسیب دیدن جبران پذیرند به جز یکی از آنها میل خواسته ای وجود دارد که تقریبا به اندازه میل به قضا یا خواب جرف و ضروری است و به ندرت جبران می شود و آن همان نیازی است که فروید میل به بزرگینامید و دیوی آن را میل به مهم بودن نام نهارد زمانی لینکولن یکی از نامه‌هایش را با این جمله آغاز کرد هر کسی تعارف را دوست دارد ویلیام جیمز می گفت امیغترین و اساسیترین اصل در طبیعت انسان تمایل شدید به مورد قدردانی قرار گرفتن است او از آرزو خواهش و حوث سخن نگفت بلکه نظرش فقط میل شدید به قدردانی بود در واقع در وجود انسان اتشی قوی و نیز سوزنده وجود دارد که کمتر کسی را میتوان یافت که قادر به سیراب کردن خود باشد اما کسی که بتواند به چنین توفیقی برسد و این اتش قلبی را ارزا کند رضایت تمام مردم را با خود هم را خواهد داشت و آنچنان که وقتی عمرش پایان میابد و از دنیا میرود حتى گورکن هم برایش تاسف می‌خورد اشتیاق و تمایل به داشتن احساس اهمیت یکی از تفاوت‌های قابل ملاحظه و در درخور توجه بین انسان و حیوان است برای توضیح بیشتر به این مثال دقت کنید وقتی من پسر بچه‌ای روستایی در ایالت میزوری بودم پدرم خوک و گاو پیشانی سفید پرورش می‌داد ما معمولا گسفند ها و پیشانی سفیدمان را در نمایشگاه های روستایی و نمایشگاه های دام سراسر قرب به نمایش می و با امتیازهای بالایی که می گرفتیم رتبه اول را کسب می رمودیم. پدرم روبان آبی رنگ جایزه ها را با سنجاق به ملحفه چیته سفید رنگی نصب می و وقتی دوستان و مهمانان به خانه می ملحفه یه بزرگ چیت را بیرون می آورد یک سران را خودش می گرفت و طرف دیگران را من می گرفتم و او روبانها را به آنها نشان می داد گستفند ها به روبانهایی که برنده شده بودند اصلا دوجه نمی کردند اما پدرم به آنها بسیار علاقه مند بود چرا که آن جایزه ها به او احساس مهم بودن می دادند اگر اجداد ما از این انگیزه سوزان آتشین احساس مهم بودن محروم بودند مدنیت و تمدن سازی غیر ممکن می شود. بدون آن ما همچون حیوانات می بودیم تمایل به داشتن احساس اهمیت الهان بخش دیکنز در نوشتن رومان های جاویدان و ماندگار او بود همین تمایل بود که به سر کریستوفر رند الغا کرد تا سمفونی های بی را اجرا کند همین تمایل راکفلر را به جمع وری میلیون ها پول تحریک کرد در حالی که هرگز هم آنها را خرج نکرد و بالاخره همین تمایل است که خانواده‌های های سروتمند شهرتان را به ساخت خانه‌های بسیار بزرگ و مجلل وامی دارد این تمایل محرکتان می شود که جدیدترین لباسها را بپوشید، آخرین مدل اتومبیل را سوار شوید و در مورد فرزندان زیرک و با با دیگران صحبت کنید. همین تمایل است که بسیاری از پسرها و دخترها را به پیوستن به گروه های خلافکاران اقوامی کند و به انجام اعمال غیرقانونی و خلاف عرف و اخلاق وامی دارد. به طوری که ای پی مولرانی که زمانی رئیس پلیس نیویورک بود اذعان آن می کرد. به طور میانگین خلافکاران جوان سرشار از خودبینی هستند و بعد از دستگیریشان اولین خواسته خواستیانها ملاقات با خبرنگاران روزنامه هاییست که از آنها قهرمان می‌سازند. تا وقتی مجرمان جوان با علاقه و خیره خیره به تماشای خودشان در تلویزیون آن هم بعد از ورزشکاران ستاره های سینما و سیاست مدارا نگاه می‌کنند. کنند چشمنداز نامتبو و ناگوار سالها حبس و محکومیت به هیچ وحش به ذهنشان نمی‌آید. اگر به من بگوید از چه راهی احساس اهمیت می‌کنید، به شما خواهم گفت چگونه فردی هستید رویش شما برای رسیدن به احساس اهمیت، ویژگی‌های شخصیتی تان را منعکس می‌کند. به سخن دیگر، مهمترین فاکتور شناخت در مردش گاس، روش آنها در به دست آوردن اهمیت است. برای مثال جان دی راکفلیر احساس مهم بودنش را با صرف پول برای بنای بیمارستانی مدرن در پیکینگ چین که میلیون ها بیمار فقیر و بیبزاعت را پذیرش می که هرگز خودش آنها را ندیده بود و بعدها هم ندید به دست آورد و یا دیلینگر احساس مهم بودنش را با راهزنی سرقت از بانک و آدم کشی به دست می آورد وقتی ماموران افبیایی در تعقیب او بودند، به خانه ای روستایی در مینه سوتهوچون برد و گفت: من دیلینگر هستم. او از اینکه دوش من شماری یک ملت بود، به خود می و سپس در ادامه گفت: من غصه آسیب رساندن به شما را ندارم، اما من دیلینگرم. بله، تفاوت اصلی بین راکفلر و دیلینگر. در روش به دست آوردن احساس اهمیته آنهاست تاریخ با نمونه‌های متهیرکننده ای از انسان‌های مشهور می‌درخشد که برای رسیدن به حس اهمیت چه تلاش‌ها و تقلاها کرده‌اند حتی جورج واشنگتون هم دوست داشت او را مقتدر بزرگ رئیس جمهور ایالات متحده بنامند و کلمبوس لغب دریا سالار اغیانوس و فرمان فرمای کل هند را برای خودش می خواست کاترین کبیر از باز کردن نامه که او را با عبارات اولیا حضرت همایونی خطاب نکرده بودند خودداری می کرد. و همسر لینکولن در کاخ سفید همچون پلنگی خشمگین بر همسر گراند پرخاش کرد و بر سرش پریاد کشید که چطور در حضور من جرعت می قبل از این که به تو اجازه بدهم بنشینی؟ میلیونرهای ما در تأمین سرمایه ی حیعت اعظامی دریا سالار برد به قطب جنوب در سال 1928 کمک هایی فراوانی کردند چرا که می دانستند رشدکوهای یخی قطب جنوب به نام آنها سبت خواهد شد. میکتر هاگو هیچ آرزوی نداشت جز این به افتخارش پاریس را به نام او تغییر دهند حتی شکسپیر سر آمد بزرگان عربیات سعی داشت با تراحی و ساخت آرم مخصوص خانواده های بزرگ به نام خودش درخشندگی و جلوه خاصی ببخشد و برای ارزای خانوادش اعتباری ایجاد کند در بعضی موارد افرادی برای جلب دلسوزی و توجه و برای رسیدن به احساس مهم بودن خود را علیل و ناتوان می نماینند به نمونه خانم مکرلی توجه کنید او با وادر کردن شوهرش رئیس جمهور ایالات متحده در فراموش کردن امور مهم دولت به احساس اهمیت می رسید مثلا از شوهرش میخواست ساعت ها در رختخواب کنارش لم دهد دستانش را دور او حلقه بزند تا او آرام شود و بخوابد او میل به توجه و اهمیت خود را با اصرار بر این که تیه مدت تعمیر دندانش شوهرش در کنارش باشد ارزا بیکرد و یک بار که شوهرش به علت قرار ملاقاتی که با جان های وزیر دولت داشت مجبور شد او را با دندان پزشک تنها بگذارد جنجال و هیاهوی آنچنانی بپا کرد ماری رابرتز راین هارت نویسنده درباره زنی نیرومند و سالم برایم میگفت که با هدف رسیدن به احساس اهمیت خود را به معلول بودن و ناتوانی زده بود کانو راین هارت میگفت آخر روز این زن مجبور بود با حقیقت روبرو شود سالهای بیاوری و بی برای او ادامه یافته بود و دیگر فرصت چندانی نداشت که به آن دل خوش کند بنابر این به بستر رفت و دیگر از جای خود بر نخواست مادر پیرش تیه ده سال به طبقه سوم خانه می رفت و برایش قضا می و از او پرستاری می کرد سپس روزی مادر پیر خسته و درمانده از گزاری دختر خودش را تسلیم مرگ کرد. دختر علیل تا چند هفته پج مرده و افزرده بود. اما سرانجام از رخت خواب بیرون آمد، لباسهایش را پوشید و زندگی عادیش را از سر گرفت. The dodhiazmanobemutabar par innuk per i kid dorant, kebaziazmardon beddivonigu, junun keshi de mi shawant, to darru ya hoyeshan, et soce mohem budan rodar Yovant. E' so si kedatun yo yessach tochenevorii asonhosalb should hast. Dar yolota muthed, te dood bi moronik duchora amrose ruhi ravoni hastant, as te do bi dar maj. En die jaren bij Marie hebben nog een hornje mee bereikt, bij sterast. En moverast die delilas liep John on de divanen die chist. C'est de jargonie daar fard ruim mee dacht, ke be u divanen miguyant. Kijk eens nemit het bekennings alle pici dewo, kostardeiposucht haat. En mo mo mo' midonin bij Marie haa je kousie hemdjon se vlees, se lul haa je mag zira, als ben mee bereikt, van moege bij John on de در حقیقت نیمی از تمامی بیماری‌های ذهنی و روحی را می‌توان به چنین علل فیزیکی همچون آسیب مغز، مصرف الکل، توکسین‌ها یا داروهای سمی و جراحت‌ها نسبت داد. اما نیمه دوم که قسمت مبهم و مخوف ماجرا چه؟ نیمی از کسانی که دچار جنون می‌شوند، ظاهراً مشکل بنیادی در سلول‌های مغزیشان ندارند. در آزمایشات پس از مرگ بافت مغز آنها را با میکروسکوپ‌های بسیار قوی بررسی کردند که نتیجه این بررسیها و تحقیقات نشان می‌دهد بافت مغز آنها مانند مغز من و شما و هر انسان سالم دیگری است. پس چرا این افراد دیوانه می‌شوند؟ من این سؤال را از پزشک تازه اول یکی از مهم‌ترین بیمارستان‌های روانپزشکی آمریکا کردم. این پزشک که در رابطه با نانشش در مورد روان پزشکی و جنون بیشترین افتخارات و بزرگترین جایزه ها را دریافت کرده بود به سراحت به من پاسخ داد که نمی داند چرا مردم به جنون کشیده می شوند هیچ کس به طور دقیق و با اطمینان نمی تواند به این سوال جواب دهد اما او اضافه کرد که تعداد زیادی از افرادی که دیوانه می شوند در دیوانگی به احساس اهمیتی می رسند که در دنیای حقیقی نتوانستند به دست بیاورند سپس این داستان را رو برایم روایت کرد همکنون بیماری دارم که ازدواجش به یک تراژدی برایش تبدیل شده است او می‌خواست به عشق، لذت جنسی فرزند و شهن و منزلت اجتماعی برسد اما واقعیت زندگیش همه امیدش را برباد داد شوهرش عاشق او نبود او حتی از غذا خوردن با زنش خود دوری می‌نمود و مجبورش می‌کرد غذا را برایش به توقی بالا بیاورد این خانم نه فرزند و نه هیچ گونه شأن و منزلت اجتماعی به دست آورد سرانجام کارش به جنون کشیده شد و در خیالاتش از شوهرش طلاق گرفت و زندگی دوشیزگی اش را ادامه داد اکنون او فکر می کند با مردی از خاندان اشرافی انگلستان ازدواج کرده و اصرار دارد او را بانو اسمیت بنامند در مورد فرزند هم تصور می هر شب یک فرزند به دنیا می آورد هر با که از اون می خواهم اینجا بیاید می آقای دکتر من دیشب یک نوزاد داشتم زندگی همه یکشتی های رویایی او را با سخره هایی تیز و ویرانگرانه در هم شکست اما در جزیره های آفتابی آرام و زیبای جنون تمام کشتی هایش به سمت بندرگاه حرکت کردند در حالی که رویا انواج ملایه می داشت و باد با بادبان های کشتی موسیقی جذابی را برایش می نواختند آیا این وضعیتی فجی و حوزن انگیز است؟ نمی دانم. پزش که او می گفت حتی اگر می توانستم دستانم را دراز کنم و سلامت عقل او را به دست داورم و به او برگردانم هرگز این کار را نمی کردم او الان بسیار شاد از گذشته شده است حال که بعضی از مردم این چنین تشنه احساس همیتند که تا مرحله جنون و دیوانگی پیش می روند تصور کنید من و شما با قدردانی صادقانه از آنها قبل از رسیدن به جنون، چه موجزایی می‌توانیم بیافرینیم چارلز شواب یکی از اولین کسانی بود که در تجارت آمریکا به درامده سالانه یک میلیون دلار دست یافت. زمانی که قانون مالیات بر درامد اجرا نمیشد و کسی که هفته‌ای پنجاه دلار دست مزد می‌گرفت، از نظر عموم درامده خوبی داشت. در سال 1921 وقتی شواب شوآپ فرازیو هشت سال سن داشت اندرو کارنگی ریاست شرکت نوپای استیل ایالات متحده را به عهده گرفت شوآپ بعد ها آنجا را ترک کرد تا اداریه شرکت استیل بیت لحم را که غرق در مشکلات و ورنج بود به عهده گیرد که سرانجام آن را به یکی از سودآورترین شرکت های آمریکا تبدیل کرد چرا انترو کارنگی سالانه یک میلیون دلار یا به عبارت دیگر روزانه بیش از سه هزار دولار به چارز شواب دست موز می چرا؟ چون شواب نابغه بود؟ خیر. چون بیشتر از هر کس دیگری در مورد تولید فراورده‌های استیل اطلاع داشت؟ چه سخنان گذاف و پوچی؟ چارز شواب خودش برایم هم اعتراف کرد که او کارگران و کارمندان زیادی داشت که بیشتر از او بر تولید استیل اطلاعات و دانش داشتند از نظر شعب او بیشتر به دلیل توانائیش در رفتار و برخورد با مردم چنین دست مزدی می گرفت از او پرسیدم چگونه این مهارت را یافته است؟ او توضیحاتی داد که در آنها راز مهمی نهفته بود جملاتی که باید با تلای ناب هک شود و در هر خانه، مدرسه مغازه و ادارهی در سراسر جهان نصب شود جملاتی که کودکان باید به جای اتلاف وقتشان در حفظ کردن صرف افعال لاتین یا ازبر کردن میزان بارندگی سالانه در برزیل آنها را حفظ کنند جملاتی که اگر آنها را یاد بگیریم و در زندگی به کار بندیم تمام زندگی من متعول می شود او می گفت من هموار تواناییم در ایجاد اشتیاق و شور و شوق در کارگران را مد نظر دارم و آن را می پرورانم. این بزرگترین سرمایه است که من دارم. بهترین راه پرورش و تقوییت ویژگی و خصوصیات های برتر موجود در یک شخص قدردانی، تشویق و دلگرمی است. هیچ چیز به اندازه انتقاد از طرف مافوق بولند همتی و آرزوهای آدمی را از بین نمیبرد من هرگز کسی را مورد انتقاد و مگویش قرار نمی دهم به نظر من باید برای کار کردن به افراد انگیزه داد به همین دلیل به ستایش و تحسین علاقمند و از عیب جویی و ایرادگیری بیزارم وقتی از چیزی خوشم می آید غالبا آن را تصویب و تصدیق می کنم و در تحسین ها و تشویق هایم زیاد روی و اصراف هم می کنم این روشی بود که شعب به آن عمل می کرد اما اگر بخواهیم به طور میانگیم در نظر بگیریم مردم چگونه رفتار می کنند؟ دقیقا نکسان اگر رفتاری از زیر دستانشان ببینند که خوشایندشان نباشد بر سر آنها فریاد میکشند و اگر آنها کاری کنند که برای آنها خوشایند، سودمند و رضایت بخش باشد در مقابل آن سکوت میکنند و حرفی نمیزنند یک دو بیتی قدیمی میگوید یک بار کار بدی از من سر زد و همیشه به رویم هم آوردند دو بار کار خوب انجام دادم اما هرگز چیزی راجع به آن نگفتند شواپ میگوید در طول زندگیم هم همکاری های گسترده و ملاقات فراوان با شخصیت‌های بزرگ از دورترین نقاط جهان داشتم اما باز هم به دنبال کسی هستم که علا رقم داشتن جایگاه و منزلت بالا این را درک کند که روحیه‌ی تشویق و تحصین نسبت به روحیه‌ی انتقاد تأثیر بیشتری دارد و توسط آن کارها بهتر پیش می روند. این سخن که او به سراحت به آن اذعان کرد یکی از برجست ترین دلائل موفقیت شگفتنگیز اندرو کارنگی بود کارنگی هم در انظار عموم و هم در خلوت هم کارانش را می ستود او حتی دوست داشت بر روی سنگ قبرش هم تشکر و تمجید از دست یارانش را حق کنند از همین رو برای خودش کتیبه ی آماده کرد که روی آن نوشته بود؟ اینجا آرامگاهی کسی است که میدانست چگونه افرادی را که باهوشتر از خودش بودند در کنار خود داشته باشد.